چون گل هردم به بوید جامعه در تن کنم چاک از گریبان تا به دامن تنت را دید گلگویی که در باغ چون مستان جامعه را بدرید بر تن من از دست غمت مشکل برم جان ولی دل را تو آسان بردی از من به قول دشمنان برگشتی از دوست نگردد ایچ کس با دوست دشمن، كانتنت در جاه چون در جام باده دلت در سنه چون در سیم هاپن به بار شم اشک از چشم خونین که شد سوز دلت بر خلق روشن مکن کهسیین هم آه جگر سوز برآید همچ دود از راه روزن دلم را مشککن و در پا میانداز، که داارت در سر زفه تو مسکن که دل در ظرف تو بسته است حافظ بدین سان کار او در پاو میافکن.